هاشا که من به موسم گل ترک می کنم من لاف عقل می زنم این کار که کنم مترب کجاست تا همه محصول زود و علم در کار چنگ و بربت و آواز نی کنم از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق می کنم کهی بود در زمان وفا جامعه می بیار تا من حکایت جم و کاووس کهی کنم از نامه سیاه نترسم که روز هشت با فیض لطف او صد از این نامه تی کنم کو صبح تا گله های شب فراق با آن خجست طالع فرخند پی کنم این جان آریت که به حافظ سپور دوست روزی روخش ببینم و تسلیم به وی کنم